بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إفرق الأنبياء و سيد المرسلين و آلية و صحبية أجمعين اما بعد بحث المسمن بحث معلقات معلقات من بخاري هست حدشان ك بحث مولت شروع شده بودر بحث موقذر حدثة معان عن عنا روما داشت بحثة عن, بحث عن عنا رما داشت بحتي بحتي بحتي بحتي بحضیث معازف که امام ك... بخاری باسیغي قال قال حشام رحمار امام بخاری رحمه الله با این اسداد شنین میبیات قال حشام قال... رحمار حدثنا صدق ابن قالد عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن عطی ابن قیس عن عبد الرحمن بن قال... غم قال... قال <الحزه> حدثني ابو مالك او ابو عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هنن من امتي يسهلون الحر والحرير والمواذب الحديث بحث حديث و اين اسناد با قال هشام نعمر عند البخاري شلون میشه حالا سوال اينجا مطرحه سوال اينجا مطرحه در نزد محدثين كه آيا بحثي كه امام بخاري ميگويد قالا آيا اين قاله امام بخاري صيغه چی هست؟ سیغه تدریبی هست که مدلسین استفاده می کند یا این که یکی سیغه های تسیخ به سماع هست آیا سیغه های معلقه؟ انبار معلقات آلا ما اون چیزی که ما به در باعث حسیث هست او برزه ذکر می کنیم معلقات چی و چی سیغه های داره و بعد از اون تسیخ می دیم روی این مزاله اول گفته اول گفته ای امنکسی و امنصلاح در مقتصر در معرفة علم الحديث يكون من بيات التعليقات في الصحيحين وتكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات الواقع في صحيح البخاري وفي مصر من أيضا توجيك من بيات فأما إذا قال البخاري قال لنا بعد البحث سيغة هاي سيغة هاي التعليق هي الحادثة مع اللقص كيف سيغة هاي مع مثل روبية والروا رویه چه جزءی های رویه جزءی های تمییزه و رواج سیغه های جز مجزوم غیر مجز یعنی امام بخاری تاکیدا داره تک میکنه که مثلا فنالی روا اما رویه روایت شده که معلوم نیست صلات نزد بخاری صحیح باشه یا نه علما اون جاهایی که امام بخاری میگه روا فلان یا قال فلان بر اینه که اینها در نزد امام بخاری صحیح بوده لذا تاکیدا گفته قال فلان حالا به چه علت هول امام بخاری این کرده یعنی احادیث رو ذکر کرده احادیث رو آورده مثلا در با این ثیقه ها با با با تعلیق خصوصا 1341 حدیث چرا اینجوری میکنه علت متفاوته یا اینکه مثلا خاصه حدیث تکرار نشه یا اینکه جزء شرط کتابش نبوده یا اینکه در نزدش دعی نبوده خاصه مثلا ذرفش به بکنه ولی خیلی کمه بیشتر به خاطر عدم تکرار بوده بیشتر به خاطر عدم تکرار خیلی از این احادیث هست که صورت معلق امام بخاری ذکر کرده بطور متصلش در کتابش هم هست و اگر بنفرض ما در صحیح بخاری متصل شده باشیم در غیر از بخاری در, در عدم مفرد و اتادیی کبیر و دیگر کتاب‌های امام بخاری مثل خلق افعال عباد و جزء رفیدین و دیگر ها با هم متصل همون حدیث معلق رو داریم حالا بحث اینجاست پس ما این دو تا رو داریم الان میمونن که آیا قال یا قال فلان اما صيغه تمیزه است قفتني أمام ابن كثير بيصات بيقول فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر فهو متصل معلقية متصل متصل عند الأكثر عند الجنب فأما إذا قال البخاري قال لنا قال لنا وقال لي همavía ف Reidic أو قال لي فلان قال هشام العمار مثل هذا الحديث فهو متصل عند الأفضل فهو متصل الى الأفضل ابن الصلاح عن بعض المغاربة انه تعليق ايضا ابن الصلاح بعض, المغاربة أبن أبن فقد بعض خود خود من المغاربة منذوله شكي هست؟ قرطوبی و ابنه هست قرطوبی و ابنه هست يعني نغاو بکنید شهار قرن کسی ناغدنه کرده فقط بعض رلمائی اندولوس خود منم خوب میدونیم اندولوس و همون اسپانی امروزی هست خیلی از کتاب‌ها بهشون نرسیده مثلا به طرز ابن حزم کتاب البخار سنن ترمذی رو نمیدونسته بی من اصلا این کتابو نمیشوسته کتابو چه دست اصلا کتابی اصلا به سنن ترمذی نداری علما میگن در این مجرب تعجب که امام ابن حزم خودی که مجروح ترده با ندونستن سنن ترمذی سنن ترمذی با این همه شهرت چطور ابن حزم ندونسته حالا این عذر‌هایی که ما میگیم غیر از مشاغل سیاسی خود امام ابن حزم چون یک اسپانیا بوده بوخودش جرأت بیده ابن حث و میاد میگیст ки این حدیث جُزъ احادیس معلقه گفتن اکثر جمهور جمهور علما اکثر علما بر اینان که این حدیث متصله و حتی المصلاح از بعض مغاربه مغاربه انه تعلیق ايضا ذکره للاستشهاد لا للاعتماد ك برای استشهاد ذکر میکنه تایی یک مسئله نه برای اعتماد فرق بين اعتماد اعتماد بذلك خودش این حدیث صحیح است استشهاد شاهد برای تقویت اون روایت آورده یعنی حدیث قابل ویکن قد و بالمذاكره وانرض را در حال مذاکره شنیده یعنی رفته به درس در یک جایی نشسته علما دار با هم ذکر میکنن نه برای تحسیس معلوم نه برای تحسیس نه اومدن مذاکره میکنن من این حدیث شنیدم بیا دور میکنه در حین مذاکره روایت شنیده میگه وقد رد ابن الصلاح بأن الحافظة أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا معلومة أبو جعفر بن حمدان يكاذو علمين متحدمين ومحدثين يكاذو المحدثين قد محص يقولون إذا قال البخاري وقال لي فلان هل بكما بخاري بيات فلاني بمن قفته فلاني قفته ف هو مما سمعه عفا ومناوله این روایت این چنین به بیته امام بخاری این جزء احادیث که, که در عرض و مناوله شده عرض چطوره عرض یک از صيغهای متکله مثلا به من میام کتاب خودشه رو میگیرم نسخه میدارم مثلا به فرض کتابشه می‌نویسم میام نزد شیخ می‌خونم از کتابش شیخ تجویز می میگه از چه چیزی تجویض می‌کنه که تو اجازه داری از منی روات نافذ چطوری چیزی که خوندی این اول مناوله استاد خودش به شاگردش بده استاد خودش به شاگردش بده کتاب بگه حق داری که تو از باید جزه من روایت بکنی اینم بعد از جزء احادیث متصله که الله خواهد در بحث خود المقضى قابل ملاحظ لیکن له چیزی که هست میگه ابن کرم الصلاح علی ابن حجن رده حدیث الملاخي ابن صلاح صح برمیگرونه حجن و رد میده برنه حث که حديث ملاهير الراف كاته قال فيه البطاري وقال هشام بن وقال أخطى ابن حزم من وجوه أخطى ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن قلت وقد رواه أحمد في مسلم قلت ابن كثير وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندًا متصلًا إلى هشام نعمار وشيخه أيضًا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد والمننة إن الله خلاصاً بحث قفتي بن كثير الله ميري بمعاصرين فساني جاء أمدن إن حديث راه تزعيد كادن بر أساس قفتي بن حان ألا يجهزهايهم أفزودن الان ما میانم گفته هاشون رو میخونیم از مفت شروع میکنیم میریم به خود احسان اولاً گفتم ما مهم قبول نداره. لازمه استحلان لازمه استحلان لازمه استحلان این نیست یه چیز حرام باشه یه چیز حرام باشه و بعد دیان حلالش بکنم لازمش نیست یه استحلونه. خیلی جعال میشه که انسان در کار مباحی نمیدونم یک کار مباحی انجام میده استرسال میکنه در مباح و سبب میشه که یعنی وارد محرم بشه از بس اصراف میکنه اصراف در مباح سبب میشه که خود خود به حرام تعدیب بشه یعنی اصلش حرام نیست الان سؤال اینجاست آیا خداوند میاز مثلا بالفرز اقوامی را عذاب بده بر احساس اقوامی را عذاب بده در اساس یک کار مباحی که دارن انجام میدن یعنی مثلا فقط اینجا نشاستی ماشون تک رفتار میکنین حالا یک اصرار کردن بکنی آیا مستحق عذاب و عقاب هستی چون در خود حدیث داریم که چی تبدیل به حقوق میمون میشن درسته میشن دیگه عوض میشن تبدیل به حقوق عذاب برشون نازل میشه خب اگر این استحلال استرساله در مباحی که اصلا قابل معقوله مثل درغت عربی استحلال یعنی چی چیزی حرام باشه تو بیاید تحلیلش ببینید واضحه ولی بلردم ما بگیم حالا شما بلاغتتون خیلی قبیح هست خیلی بگیم بلاغتتون قبیح هست و مجازشو گرفت گفتیم مجازی هر چنکی اصل بدینه که گفته تریشه نه از خارج بشه به معنای غیر حقیقی تا وقتی تا وقتی که نداری بعد گفتیم مجاز طب اثبت اینی کی یه چیز حرام بده حلال بده موسوسان گفتن تأکید کردن با این گجی که اینها تبیره به حقوق میمون میشن و عذاب برشون نازل میشه غیر ممکنه که عذاب بر کسانی نازل بشه که کار مباح انجام بدن این بعد اول خدا نفس روایت مغازث یستحلون ذی الیکون اُمته اخوان والحجه ما ولا روخي قلت له ولا شرح الفاظش حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غول ليكوننا من امه قوم وليستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الله تنبلش بحث خط من هنا دار حاشيه لي برده تو دومله حدیث و روایت ننوشتن برای در نهایت حدیث و بعدی که در یک جایی هستن جمع شدند دارن مشروب میکنن و نمیدونن دارن موسیقی میزنان و این کارها رو انجام میدن کدوم از اونها با تبدیل به حقوق معناش سلام تبدیل حقوق نمیکنه لیکن الوجوه شما در قسمت اوله پس اولا بحث استحلال بحث استحلال که این چیز حرام رو حلال کردن حالا سوال شد اینجا از ما ظاهریتی مگه استحلال مگر استحلال استحلال محرم کفر نیست؟ آیا شما مثلا بالفرد متفنی شدید که این حدیث درسته و این حدیث درسته آیا شما بر اینید که اگر یک شخصی اومد بخشی مثلا بخشی موسیقی حلاله، کافره؟ شما دارید میگین حدیث درسته؟ و اشخاص خواهندو من میگن که حلاله مثلا استاد فنانی، فنانی، ابن حضر، قرطبی و غیره کافره چون استحلال کنند گفتن که حلاله شما یک چه دریل دارید حدیث عمر و اون صحابی که اجتهاد کرد و اومد مشروخ خود آیا عمر گفت کافری؟ نه نه کافری تکافري نه بهش نش که توبه بکن اینجینی نیست که تو فکر می‌کنی بعد مایوس بشه از زندگی و خونه نشین بشه میگه نمی‌دونم عمر به خدا می‌گه کدام گناه است بزرگتره نکنه گفت کدام گناه است بزرگتره اون استحلال از محرم اون محرم یا استحلال از اون محرم یا یا حضرت دنیا نمیدونن کنون گناه بزرگتر بعد توبه میکنه و از هر گناهش برمیگرده. بخت اینه که اجتهاد کرده. ابن حزم اجتهاد کرده. بر اساس اجتهادش اساس حدیث و قرائت حدیث و کرده. لذا ما نمیتونیم محکومش بکنیم به این که اون شخص است. حرکتی در مسئله اجتهادی کافر نمیشه مثل معاذ نجبا. اون معصیت کرد، معاذ نجبا. شاید یک شاخ تو خاطر علمی که بهش نرسید معذور باشه. ولی اگر ما ادمون رو که حق مثلا بالفعل من باغن کنه حلاله و میدونم این حدیثم صحیح تو چشمم میره و علم رو میدونم از سر پاش که اصلا تو چی معنی داره هر کاری می‌کنه اگر من به خودم اجازه دادم که بگم من اون روزی که حلال من کافر میشم و شک در کفرم نیست این چیزی هست که مرار و تکبار ابن تقی دین ذکر می‌کنه یعنی این میگه که اگه قولی که شما میگید من بگم چون من میدونم که باطل هست من با این قولتون کافر بشم در بحث از مصالح الله دین خب این بحثه اولیه حدیث و اونم معنای خود حدیث بس گفتیم معنای حدیث واضحه در حلال کردن حالا مباحث دیگه هست در متن حدیث که لازم به ذکرش نیست بعد گفتن که الاتبت اون چیزی که ما اران خوندیم گفتن که اینجا هشام نعمار هشام نعمار شیخ بخاری نیست و بخاری ارزش نشیده. سوال اینجاست که آیا هشام نعمار میتونیم بگیم که شیخ بخاری نیست اگر شیخ بخاری نیست چرا سه تا حدیث با مسرحه به قولش حدتنی حدتنی و, حد و حدتنا چرا صراحتا امام بخاری از هشام نعمار نمی کنه؟ اینا تهمت که در امام بخاری در از تهمت امام بخاری هست که میگن که مثلا بالفرس این حدیث منقطعه و امام بخاری از هشام نعمار نشیده از کجا میدونی که نشیده؟ مگر امام بخاری در سجا از کتابش نیومده عشام <أتشا> بن عمار نحن كذا نقاششام این اولی تعلیل پس اولین تعلیل و رد بر اونها و اون هم این که گفتن بین امام بخاری و امام هشام بن عمار شیخش هست انقطاع هست این حدیثو نشیده ما گفتیم به چه دلیل مدرکی نشیده گفتن که نه چون بخاری گفته قالب پس نشیده گفتیم که دلیل نیست که نشیده چون که امام بخاری صراحتن در جاهای دیگه از کتابش گفته حدثنا و حدثني هشام بن عمار پس صراحتن شیخش هست و از شیخ شدیده و اینم هم یک از اون این, این دومی دو مثله سه بومی مثله در نقضه اصناد بحث هشام نعماره هشام نعمار هشام نعمار استاد قرضوی در کتاب همین آهنگ و در فتا واشین این میگید قال ابو حاتم صدوقن وقت تغیر و قد تغیر آیا این گفتش درسته با این نقلش با این جمله آیا واقعا امام ابو حاتم گفته صدوق آیا واقعا گفته صدوق تغیر صدوق وقت تغیر آیا این گفته درسته؟ ما بیام انصاف پاشیم درنام صدوق وقت تغیر آیا این گفته که در این کتاب هست چنین نخمی کنه درسته؟ ما میریم برنيادة بكتاب خدا أبو حسين أبو حسين الحمد لله كتابه اشخاص علانه يشوفلان يشوفلان يشوفلان يشوفلان يشوف همه كتابه اشخاص بميني شي مبيئته ما هو أبو حاسين أبو حاسين يبيئته هشام ام نعمار لما كبر تغير وكان قديما أكبح كان يقرأ من كتابه ولن نقول كنت حذب جمبه سخة كعباز هشام ام نعمار لما كبر هشام العمار لما کبرا وقتی که پیر شد هشام العمار عوض شد اینجا چی هست؟ صدوق و قد تغیر صدوق هست و عوض شده وقتی که ما میگیم که عوض شده ما این مطلقا عوض شده حدیث شده برسته ولی اگر گفتیم صدوق و لما کبرا وقتی بزر شد یعنی هم لطفی بزرگوش احادتش صحیح هست حالا آیا این سآل اینجا من چلو به این حال خب این الان ما باید صحیح و غریب را این به طریق قبل از بزرگ قبل اینکه بزرگ بشه حساب ما زندگی یا قطع یا بعد از ببینیم که نه قبل از اینکه به تو همسالی برسه امام شام اما با تغییر بکنه امام بخاری از شنیده پس این گفته درش تحریف است این گفته درش تحریفه ما نمیتونیم بپذیریم این جمله صدیق که خاطر تغییر همینطوری خیلی ما به پسری بلند را گفته یک محدث را اشتباه متن محدث خیلی دیگه تخیل داد صدیق وقتی که بزرگ شد عوض شد بزرگ شد و بخاری این حدیث را جمله احادیثی نیست که در بزرگی شنید از هشام اما در بزرگی هشام را وقا کان قدیمه اصح کلا نقلوا من کتابه بله این اولین نقد ما بر استادی که خودش اجازه میده و درباره هشام این چنین تقمی کنه ду دو гуфте ки нақл куна гуфте имам заҳабист базан қардони чинин мегӯяд садиқул мукфир лаҳу майюнкар ما لبا یات ترکه دالف نکرا تا علامه بیا گفته امام امام قبل امام ذهبی بخونی و حالا قبل از اون گفته امام ذهبی امام گفته امام ابو اعیاد امام ابو اعیاد چی میگه چی میگه در کتاب الارشاد در معرفت علمای حدیث میگه هشام بن عمار دمشقی ثقة وربما يقع في حديثه غرائب عن شيوخ الشام فالضعف يقع من شيوخه لا منه انا هذه قلتها بس مدام ته غير قلت صدوق بياد رواه داره ودرماتش نکارتش درسه صدوق رواه از زیاد داره ودرماتش نکارتش امام ابو يعلى صاحب صاحب كتاب يشا شاید در احادیث شاید شاید در روایت های حجام العمار غرائبی باشه لیکن از خودش نیست از شیوخش یعنی متهم خودش نیست متهم کی؟ شیوخش شیوخش هست و ربما یقعو بی حدیثی غرائب عن شیوخش هم فضعف یقعو من شیوخی لا ها الان این گفته رو بکنیم صدرمون و مگذر وله ҷӯдани итҳоми худаш ҳам намод. Дар ин нақ мекунад дар итҳомаш ҳам намод, вале ки ниҷон чи дорем? итҳомаш ҳам намод, яшӯхш. шухш. алома бини худаи имам যাহаби. имам যাহаби дар китоби Зикру در ман ту куллима фиҳи ва хува мувассат. имам ҳиҷоб алъмаро дар ин китоб лик мекунад, тавсихиш мекунад, агар никорат дар ривоятиш аст, пас чӣ дар شرط ده خود امام ذهبی هم در این کتاب این بوده که کسانی که روایتش از حسن باینتره ذکر نکنه یعنی در روضی صحیح نباشه شرط اثر این کتاب بوده ذکر من تکلیما فیه و هو موثق کسانی که عبارات صریح باشه و موثقا پس این دو می گفتی گفته امام ذهبی را باید درست بفهمید منظور امام ذهبی تضیی به هشام رحم عم بیان این است بعض از اشتباهات هست در روایت‌ها ولی از خودشیش همچون که ما ابو یعنی خلیلی توجیهش میکنند سه بومی گفته امام نسایی میبوید که امام نسایی گفته لبعصبی حالا سآل اینجاست امام نسایی درسته متشددی یا متشددی یا متشددی یا متشددی را چون شروع خمام بخاری هم نفس کرده درسته حالا یک متشددی دیده در روایت فلانی مشکلی نیست چی میشه؟ میشه مورده دیره میشه سقه درسته؟ سقه میشه خود به وقتی که وقتی که یک متشددی بگه که فلانی بعض درش نیست اشکالی در روایتاش نیست یعنی سقه هست یعنی عیدی درش ندیده چون اگر ایب دیبینه وای به حالش بخاری راهانا کرده دیگه چی برازه به به این روایت به شام را پس این روایت پس این این گفته ای بر ا و امام یحیاب نمعین که بازم جز عیم متدلین هست و جز کسانی که بالاخره نفسی شدیده در امحزیز دارن نواب بریکشی میگه در ما هشان نعم ها میگین خیلق توضیقش میکنه همونطور که در تحضیب و تماظرین و امام احمد عزیزی در صفاد ذکرش میکنه و دیگر عیمه خیلی از عیمه رواهات های زیاد یادش نمی چرم این نمضی که اصاب قرزاگی داره و یا همچنین یوسف می الجده میگویند که امام احمد و مروزی در نامهی که بهشون اومده انکار کردن برای هشام نعمال هشام نعمال روزی خطبه میکنه در بحث خلق قول عفت نیبود که در اون زمان بود امام احمد و محمد میاد انتقاد میکنه هشام نعمال الان سؤال اینجاست ما یک بلحثی جنب تعدید داریم و اون هم این که اگر قرید قرین هم هستید. شاگرد همین در یکی رسی سکت هستید دارید. شما بید در دو سفر زباد بکنید. جرح شما قبول میشه؟ نه. در جرح و تحدیث نقض قرین در قدیه باید رفته نبیشه. اینجا خشام معمال احمد محنبل و مربضی قرینند. اولا جرح شما در هم باید این قاعده حدیثی هست. مدد اینکه مبین بشه باید دیگه تعییدش بکنه. این یک ی ترینه چه ها دردن همه دریب سبخن اونهایی که دریب سبخن نمزه شد در همدیگه پر زیفته نمیشه دومومه این که کسی که نامه نوشته به امام احمد صاحب این نامه مشخصیش مجموعه آیا امام احمد راست خودش دعای بکنیم؟ چه توجیهی داریم در روایتی که اصلش جهانا نه معلوم نیست که نامه رو گرده نامه از طرف کی بوده و گفته به ما محمد محمد بلکه این همشه هم نعموار چنین گفته و چنان گفته از کجا معلوم که درو بسه سرش نبوده پس ما نمیتونیم جرح ما محمد محمد محمد و نکارتش و گفتش که مثلا احادیث سره ها بشه ما نمیتونیم که مطلقا بپذیریم و توثیخ آیمه مثل یحیو ابن معی و خود النسائی ابو و, و ابو حاتم و زهبی و دیگر آیمه این تو احمد عجلی محدثین همشون خود امان بخاری وقتی که با نبز و حجزتنی روید میکنه خود اینها دلانت این این این بر این نبیدن که این شیخ وقتی که میگید حجزتنین دلانت بر این نید که این شخص صفح در اصول در نبز امان بخاری خودش صفح هست الان ما چطور به خودمان اجازه بدیم؟ مثل بعضی ها می خود اجازه بدیم که امام بخاری صاحب کتاب و که اجه در حدث بیام تحهاان وارد بودیم در شیوخی که متحصللا نداسره باید من بخاری یعنی ما در وباناس کردیم جلو مخالفی خودیم. در نبینی میشه الان احادیث حاث رد کرد اگر این حث سال هست مشکل نشانون اما هم, ام هم مشکل درش هست پس احادیث دیگه هم هست که مشکل درش باشه در مثل حفرانانی فلانی هم با همم و آدمای دیگر فرانی در برم ذرییم. پس هر وار و گوار همینجوری باید احادیث رو از دست بدیم با این نقدی که فلانی یا فلانی کرده با فلانی کی کرده بچه‌ اساسی وقتی کریم جرح میکنه و جمهور محدثین توضیح میکنه احمد مرداوی فقط گفتن ابن نقد کرده هشام نعما نه در روایتش فقط در ادالته و من بحث خلق قران که مسئله ایش هست و در مسئله اجتهادی روایتش, روایتش روایت شیخ در بدعتش پذیرفته نمیشه نه مطلقاً مرجی از خیلی حس تشیع داره چون مخصوص امامتای آیا مطلقا رو واسه بنویسید یا در خصوص بدعتش اینم واسه قاضی حدیث قاضی برای جهات عدیده در خصوص بدعت سنن رو بنویسید آیا این حدیث میگیم مثلا شما تومادیدین بچتونم هر چه‌ام اما که در خصوص بدعت پیرو لفظن به خلق قرآن گفتید کاری به خلق قرآن نداره و وقتی به امثله نداره پس نمیتونید هشاش اما که شیخ بخاری هست. مورد نقص خرار کنید و بیایم متهمش بکنید و گفته ها هم دیدید گفته ها هم دیدید که از دهان علم حدیث پاکی رفته شده نید و درش تحریف نقص و فهم ندرست که ما باید درست با درس بفهمید الان شاید از شما ها پس چرا شما آقای فلانی چرا شما نمیگه بگه خودش نمیفهمه در عالم نیست خیلی ها دست ها هستن چی نمیده شو بند کنم بگه شخص این همه ای هم ما کاری نداریم که نمی‌دونی یا میدونه ما به اون به ما مطرح اون کتابی که در خدمت ما گذاشتیم. ما نمیتونیم الان شما مثلا خیلی حالت دوست ندارید که مثلا به خاطر ما درباره عالم فلانی حرف بزنیم. ما اجازه بدیم که درباره شیخ بخاری صحبت بکنه نقد بکنه ولی خودش مورد اتهام واقع نشه خودش که تخصصش حدیث نیش بخواد اجازه بده که متهم بکنه شیوق بخاری و بخاری خودش و ما ساکت بشیم که چی چیزی نگیم میاد بخوسته امام ابو حاتم و ندایی و فلان تحریف بکنه بعد ما ساکت بشیم میگه شادرا دست خوب خوب کاری کردی و متشکریم میاد این که باز از ائمه ما دفاع بکنی از کتاب این دفاع بکنیم واسه دفاع بکنی حالا سوال اینجا واسه آیا شما نصیحتشون کردید لازم به نصیحت ما نیست ما که دستمون بهش نمیگره و دو ما کی هستین که از ما بپذیره و شما میگن کم نوشتن میگن تحریم علاده طره به البانی نیست میگه نمیدونه بخونه میگه نمیدونه که محدثی که صاحب شأن багане мидине ке мо Имоми Албони ҳазорон бор аз худ олимтар меге баростатар он намединам мустақимтарро намединам муҳкамтар дар илми ҳадис нис аҳли суннӣ фасألوا аҳли الذikr шумо аё аҳли الذikr дар хусуса илми ҳадис аё ин шахс бо вазифаи як шахси мутманад дар илми ҳадис митонед меш қабул кунед чӣ хизмати кард чӣ китоби таҳриж кард биёрид چه نفسی ببینیم در علم حدیث؟ شخصی که دیمی سا اشتا نو تحقیق داره. سلسلی زعیفش دیده جلده. نمیدونم با هفه شدارت حدیث تخریجش اینجا سو کجاس و فلانی علتش فلانی. آیا بیاین اون عالمی که این همه خدمت کرده و این همه قدمی راسق در علم حدیث داره. بیاین حرفش و صحبتش رد بکنیم. بیام صحبت یک شخصی بدیم که اصلا علم حدیث حالیش نیست. نمی حالشید فکر نکنید که مثلا به پرد من دارم می تو نوممثلان نه. من دارم به غتم بر میکنه وقتی که می بینم مذ بر حق صی بخاری پای ما میشه. وقتی که می بینم حال این چینی زیر تال میره و شیخ بخاری تیک میشه من به غیرتم بر میخوره. نمیدان ساک بش. این مسئله ای هست در بحث هشام اما. پس هشام اما شیخ بخورید. هشام اما شخ بخارید و در سخرل هیچ شک هم نیز. و این روایت هم نمیدونیم از طریق هشام عمار نقدش بکنیم. خب بریم به مسئله بعدی. مسئله بعدی خیلی جالبه. خیلی جالبه یعنی. یعنی من توقع رو نداشتم این چینین لغزاتی، این چینین زلات قدمی یا چی بهش میگن در لغت اخوارشی نمیدونم. پا به چرخی یعنی آدم, آدم میو که تو پای انسان بلحظه یک مسئله یعنی این خیلی واقعا سنگینه یعنی شاید بگم والا کلمه حتی سنگینه والا خب حذاق یک فهمیشه یعنی مثلا به فرض یک طالب علم شما اینجا نشستی شما مثلا به فاطمه میگم نه این حدیث در بخاری در درسه شما میگم آیه فلانی برو, برو ای ای نجوم کی از برو تحت اون اون این هر جوابی هست چیکار هست اوه صدها حزه‌ای بده بردارش بگو شما کجا میرین این رابی که این اثبات بخوای هست درست؟ این حدیث اثر قشام معما در بخاری هست درست؟ شما به تو تحقیق میدم میگم ببین این ابن جابر در بیارید کجاست شما کجا میگی چا تو دیو تهذیب تهذیب الاله تهذیب که در خدمت رجال قرینی نوشته شده درسته علاوه بر اصول غزالی چطور میکنه اصول غزالی میگه قال الغزالی میگه من حالا مستا چونه میکنه خلاصش این چیه اینکه بد میکنه مستش گفته گوشه شوخی رو میخونه دهلیل اللوطار در نیل اللوطار نیل اللوطار بس اول هم همینجا نیل اللوطار میگه خوندم نیل اللوطار چه کتابی است؟ ثقه حدیث درسه ثقه شرح حدیث مين احكام درس است الف و با و تا و فنان حرام حلال و, و مشافعه خیلی جواه خیلی کم فقط نقل داره واسه میذونه درسته خیلی کم کتاب چند سال پیش نمیشه شده؟ 30 سال پیش درسته 200 تا 250 صفحه حد ذاتش در درسته بیشتر از این که بس كتاب امي در المرجاني كتاب امي ايش كي انا كتاب علم در علمرجاني الباشي قديم مش جديد تشيلي ميجي ويالحق اني يقن صفان در ميجي ويالحق قلته شلون ما يقولن ويالحق اني لم اجد مصدرا لهذا الكلام في كتب الجرح والتعديل الذي رايته ميجي صداقه نمی دونم کیه رفتم به نیل اوتار برگردیدم امام شوکانی گفته که صداقه ابن عبدالله مجهوله صداقه ابن عبدالله هست و مجهوله میگه و الحقه لم اجاز مسترن لهذا الکرام میگه و حقه بجا خیلقه دیدم صداقه میگه در مجهول من ار کتاب جرف و تعدیل میگه اینچنی صلبتی ناریرم ذکر آنلاین قسم شو کنینات یعنی ما نمی‌دونستم این صدقه ابن عبدالله چه دربی و چه مشکلی داره بالاخره اینجا گفتم این صدقه ابن عبدالله صدقه صدقه منو قاضی ده یعنی الان بالفعل به شما بگم این صدقه از مهمل چیزی نمیده صدقه حجاته صدقه دروصه شما برام میگه حجاته این صدقه دروصه میگن برید تحقیق در بیارید این صدقه اي يا حضرتك عبد الله هست لهيش انا غير اقول لك يا انا قريت الكتاب اللي انت بقول لك شيء كده ضغط كده تدمير الذهني تدمير الامل واليقين تدمير كده الذهني وانا الكتاب الجديد ده اللي ميجي ايه حضرتك كده كنا اصلا الاستاذ بتاع متطلب عبد الله اصلا انصط انا ميجي ما نديناش الجفه то ки на мо ме шохари густа ки маҷдула яъни аилла таъаллам иншоъ умарот аллазе ин ху месарда сардадди Абдуллоҳ аст ки ки маҷдула дар ҳолати ки ташаҳҳод сардадди Абдуллоҳ дар شیعӯх ҳишоми умарот надорим дар شیعӯх надорим ва аз шаҳид ҳам бинем дар шаҳид ҳам бинем айна шаҳид ди اظن اینجا که چرا به قاسم بن علید تلقات را عبد الله بن خالد چرا به تاریخ عبد الله بن خالد تلقات میخاله چون عبد الله بن خالد ثقه این دیگه اصلا گفتم یعنی حداقلش من بگم یعنی اگه دلیل تو علمک دبیرستان در مدینه مثلا اشتباه بکنه به در تعبیر و تهذیب من چونکه رواض صحیح بخاری و مسلم تخریب کنه در زشت یعنی که طالب علمی نتد به تشخیصی رو بی کود رو هست هدف که من میگم زشت یعنی من دارم میگم یعنی شخصی که کمترین و کوچیکترین کتاب حدیث رو نمیدونه تخریب و تهذیب بده روازه من دیگه گفته نیاز به تعبیب داره تعبیبش بکنید چه تعبیب چه دفاعی بکنید شما مثلا بفرشید و اونم ختابه متأخذ و بعدا قاضی که علفه صدقه ابن عبدالعه صدقه ابن صدقه ابن عبدالعه که این شخص دیگر و اون شخص دیگر بین آسابون و زمین با هم فرق بلا اونو عوضی بیش داریم داریم که بدیم غیره این که این برشید غیره دی که ما بگیم افتراب الدنوغ هست و و بختار ایمام بخاری و اهم شدیم به ایمام صدقه مجهولی صدقه این صدقه هست ا حذر بخوریم از خدا ده چون صدقه این صدقه ابن خالد از عبدالله مجوز نیست شق نیست با وجود شوخ جزء شوخ بخاری هست که در صحیهش برای او تکرار زکات ندنه اینو واقع چند باید داره خب پس این یعنی این نقد هست از یک سوال بر خودش نقد من نیست این نقد بر خودشه یعنی این وقتی که آدم به خودش جرأت بده عالم ایرانی چه زیر سوال ببره باید پاششین بلند ولی خب نمیدونم بر برشون بر میخورد میگن شما چطور به خود شما کی هستید و چه کاری هستید ما اشکاری نیستیم ما ناقل علمی و ما الحمدلله کتاب داریم تحریب داریم تحریب داریم کتاب رجال داریم نبی حاطب داریم. داریم. داریم ما قعف داریم ما مجبور نیستیم که بیایم مقلب باشیم هرچی فلانی گفت درسته حالا باش عالم باشه عالم درم باشه بجایی خودش ما گفتیم امام شافیه و خیلی جهان میگیم که شافیه اشتباه کردن مالک اشتباه کرده ولی متعذفانه خیلی ها بگوش اجازه میدن که صحابه در اعتقاد اشتباه کردن صحابه را متهم میکنن عثمان ابن عفان و فلان عبر ابن عاص و فلانی و فلانی بگوشون در اعتقاد اجازه میدن ولی ولی ما اجازه ندن در برای این اشخاص و باید میکنیم اونها اجازه نه برای صحابه مصوبات کنه، نه برای علمای مصوبات کنه، نه برای کتاب‌های سری مصوبات کنه. ولی ما نه اینها یک شخص معصوم هستن، کدوا درباره مصوبات باشه. عالم نه فلان اش، شما چی میدونید، شما برنامه یعنی آیا استاد فلانی از صحابه بهتره که داره نقدش رو میکنه؟ میگه یه جور دارید، چند چندین جور داریم اگر عالم است، خب چرا در کتاب حلال و حرام قراره حدیث موضوع است، نپورت، خیلی هست حدیث موضوع. مثلا یک از حدیث هست اگر عالمه چرا حدیثی که علما حدیثی اتفاق در وضعش دارن چرا در حسابش بیاره؟ وان عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم جاء بقن من اطراف لحیته رسول الله سلام از اطراف ریشاش میکینه حدیث موضوعه علما حالو گفتن خب چطور یک یک شیخی که شما میگید عالم حدیث هست میاد اشتباه میکنه اینجوری اشتباهی مرتکب میشه حدیث به این در وضعش در کتاب علل حرام ذکر میکنه فقط آوردم که بدونی متخصص در علم حدیثی نیست که ما بیام ما بیام حساب بکنیم و جهود امام بخاری و این همه امام نسائی و امام ابو حاطم و فیلانی از محادثی رد بکنیم و بیام حشاب نعمار تضعیب بکنیم و نقضه بر بخاری واند بکنیم این روایتی که در بخاری هست این افترا و گفتن یه چیزی هست که انسان از اون علمی نداره و انسان یعنی باید معاظب وقتارش و کردارش و حرفش باشه. آزا این نهدم ها. بلپرزم ما قبول کردیم نمده دردشان. بلپرزم قبول کردیم نمده دردشان دردن در مخالج. بلپرزم قبول کردیم. مگه آلم های حدیث مرنند مگه خداون از اون بلوی آسمان ها نظارت و برخلف شده اگه میخواد دیگه ها بکنه که بندگان هرچی خواستنی بگن خیلی شما اگر اولین مشکلی در, اول مشکل در قاله دارید قاله بخاری اگر مشکل در قاله بخاری دارید که بخاری گفته قاله امام ابن حجر نه تا تاریخ غیر از نشام نهامر یا کسانیک از نشام نهامر را ذکر میکنه که از نشام نهامر صراحتا جنیده الفسیق ام عبدالله القطان میبید خدت این هجام نهامر اینم سرقه الحسن, الحسن بن علي كان نذ الاسم علي نذ الاسم علي الحسن بن الحسن الله حسين بنصفي... الحسن بن الحسن بن علي نذ الاسم علي ببي حقين در خبراني در كبير اگر شما در قالغ بخاري مشکل دل داريد كي روايتو ميگيد روايت معلقي داددا دسته برد دار کبیر شاملین از محمد دي جران دي جران. بن یزید نبی در مساله پس اثر حسن بن طبیر حسین بن عبدالله و دیگران دیگران 7 8 10 تا طریق پس اینا رو چطور می‌بینید که صراحتن گفتن حدد زد و عمار شما در خدا مستقریم پس اینو چطور می‌گید آرا به فضل ازتون پذیرفتین به فضل ما از شما پذیرفتین که این هشام بن عمار مشکل داره و ساداته مشکل داره و اين الثقه و اين الثقه عبد الرحمن بن ابراهيم ثقه حافظ الحسن بن زميان ثقه ثقه ثقه حافظ بشروث عبد الرحمن يزيد بن جاد الثقه عطيه بن هذا مشكل مشكدر روايه البخاري بيقولتم روايه اسماعيلى بس مستخرجاته ونبينهم سنن بهقي و طبراني اذا مشكلتم درصدها که طریق به سر رسید صداقت است که واقعا در صدرم حاضر باشه آیا روایت موجود برای روایت دیگری تخییل نمیشه تخییل که اگر مست بتوانم در یک مورد روایت دیگری داشته باشم از طریق عبدالرحمن عبدواحب بن ناجد انذا له در در از طریق حسن نوبیاس بعض هم از آب عبدالرحمن ابراهیم از آب بشرو بنت از ظهریه بن جابر عقیب بن زید امی تقهه تا عبد الرحمن اگر, اگر بعطیه مشکل داریم که بازا مالکم نگاری انداریم که بازا مقبول در ند محاید از کتابی کمید اگر مشکل در از فهمان نماز که بازا تابعی و اتبار تابعی هست ما داریم رمایت در ند مبخاری از طریق ابراهیم 17 که سطح هست از وجود که رجال نجا به این سیده بدید که این شرط با این جهالتی که در هست, هست این مشکل تیز برا ما کی هست این رما با هم اون را باید توییت میشه یعنی اینجا ما تخیت داریم اینجا هم با هم داریم اینجا هم با ما تخوییت داریم و اینجا هم بادم توییت داریم نه با یکی با 6ش600 دیگر که همین اون وااس ن حالا با حالا با با این مشتیت یعنی بهگاه پری خدا شده دین رو شا کنه اینجا نه یک نفر ش نبرد اینجا هم در دادمه بشمنیم اینجا هم خود ما عایه predicate میگیم ولی تو دینداریه خودت اثر دیگه داره اینجا هم که به تطبیق بودن دیگه داره یعنی هر کدوم از این اسناد ها ما طرقای دیگه داریم خب آیا چه روزی غیحت برای ما که بیام این حدیث رو بگم آیا ما میتونیم این حدیث رو بعد از این براهین و ادله قاطع آیا ما میتونیم برم دیدید ابن کتی تو کرد دید ابن صبح استدفا کرد یعنی ما بیام اینا رو ببینید چه سنده درباره گفته‌های محدثینی هم چون ابن صلاح ابن کثیر از محدثین بارسته ابن حجر ابن دقیق العید ابن رجبی حنبلی و البانی و فلان و فلان ببین گفتید یک عالم رو بگیرید ابن حجر رو بگیرید و تمام این جهود این علما رو بگیرید توی اشتباه کرده نگاه یک نفر محدثی. سیچله در اما بیام متحنش رو بکنیم که جاهلا از متخصصین حدیثی بیام بگیم که جاهلا به آقای استاد قدلی دیر سوال داره. آیا این انصافه؟ بخاری متهم بجشه ایسا بخاری متحن بجشه بله آقای استاد مثلا کسی نیاد ازش نقف بکنه چون عالم هست و چون نبیدم یک روزی در پستی در فلان جایی داشته و فلان منصبی داشته. ما منصب نویزونم فلان و پست و رعاستت برای محمد رحلیس ما بردار حق مطلبه و دفاع از خطاب این خلاصه ای بحث امروز موند بحث این حدیث اولا خطابه بحث این بحث شک در صحابی اینجا بیدیه تحت رحمه موند حضرت ابو مالک و ابو, ابو, ابو عمر صحابه هم عدولاً الله ابو مالک باشه ابو عمر باشه این تیه اتفاق اهل سلنته و کسی بیارت خطحه در این مثله بگونه خودش. چون اتفاق در مزه اهل ساله در جمعات صاحب همه ایدنالا با ابو مالک باشه با عامر باشه. این قلاصه بحث درست امروزمون از, از تخریج حدیث معازف و نقض انتقاداتی که ما داشتیم بر کسانی که به خودشون اجازه میدن این حدیث را مورد نقض را میدن. پس طاله هشام نعمار طاله که ما بخاری به بخار طال میبریم از هشام نعمار طاله هشام نعمار سیغه های, های معلق نیست بلکه عرض و بود. که علمای حدیث در یه چیزی که تحریف میگیره یا تحویل به شیخ میدن کال به کاری نه حدتنی و حدثنا کل خدش داره به شیخ میکنه به خاطر همین میگه قالا در طبق اون چیزی که در کتاب هست پس این قال متصل هست تو میگه جمهور محدثین متصل هست منقطع نیست و هشام بن جرحی در حساب نیست اون جرح هم هست جرح مجهولی هست یعنی جرح مجملی هست که خلاف بر تعدیل ائمه هست جرح مجملة تردد مقابل تعديل هذه قادة علم جرح متعديل انشاء الله خدا و تفقه قدام بضعف يكبرون رشبه وقت جرح غير مفصل متعارض و تعديل واسع تعديل مقدم بردار حضر مفسر ما جرح اماما احمد الحمالا غير مفسر وغير غير قابل قبولتون رباية شخص مجهول بوده فس ما نمیتونیم بپذلیم و تعديل همه عن رد بکنیم فس حشاب نعمار یکی از علمای ثقه هست شیخ بخاری هست علما تعدیدش کردن و صدقه هم صدقه ابن حد الله نیست صدقه ابن خالده شیخ هشام هشام ابن عمال و شکی در تعدیدش نیست و این روایت تندیه روایتی که هم داره و طرق و شواهد متعددی که الان لازم ذکرش نیست فقط ما الان الان نو بسوال اینجا مترخی آخری مبخش سوال اینجا ده اگر سیغه عنعنه ما بحث عن عمله در درس در, در... ورد بحث متدلی هست درسه ما گفتیم از آقای مدللس آقای مدللس حدیثی که الا مدللتی که مدللسی که ثقه باشه یا صدوق باشه باشه ولی دوم نشه یا بقیه ابن بلی. از مدلل که بیاد اگر سقه باشه بیاد ثیقه عن و قاله را بگه ما رو چه نیت ازین تا اینکه یک چیزی که تاییده شده دروسته بحث تدی دیگه اگر یک مدللتی مثل ولی بن مسلم بیاد بگه عن فلانی عن لوزه میپذرید نمیپذریم تا اینکه صراحتن بگه در جای دیگر یا اینکه یک چیزی دیگر از ازاییش بده باشه درسته پس بحثمون در بحث تدلیس وثیقه عن و قال در نزد اون علمایی که ثقه هستن و تدلیس دارن حالا سوال اینجا امام میگه مدللتی که اینجا این سیغه قالب و عند متهم بکنیمان بخاری؟ آیا این حدیث, حدیث مدلسی؟ مدل... آیا بخاری مدلسی که این حدیث مدلس باشه؟ بلکردم این سیغه عند باشه و قادم که یکی از سیغه های اتصال مگر در نظر مدلسیم کسی که تدریف میکنه؟ آیا ایمان بخاری بگم؟ مدلسی که اینجای ای روایتشو نپذیریم؟ این اتفاق عین ما است که عنا مقاله در اگر قراره که و قاله شما رد بکنید پس خرما و کیرو این بخاری رو بذارید دیگه دور کنار بذارید دیگه بخاری نداری صحیح بخاری و مسلم نداری نه یکی تا تو تو هزار اوقات معارض عمل اندرش دارید فقط ما عن و قاله را در مدلتی نمیپذیریم در مدلسی نظر علمای سقه و حافظه و اسلام مثل ابن بخاری کلمات این بحثه شو نقرا ابو حديثه معود اسئله در اين 4 تا باهم باشه سوالي جا مطرح اولا با ده يده يوده در بحث ايمان دلاله باهم دلاله بر احترام حساله وا الذين امروا على مصالحكم بحثش كرديم سوال اينجا مطرحه و اون هم اينكه هر زناست حریف باشی عبریشم برای مردها معاظر و خم درسته سؤال اینجاست اینا میگن اگر این چهار تا با هم باشن حرامه اگر یک شخصی الان بگه مشروب مشروب حرامه آیا اینجا ما میتونیم ازش بپردیم میگه مثلا بلفرد اینجا مشروب حرام نیست چرا؟ چون اینجا مثلا استثناءی واقع شده با اونم معازف پس ما نمیتونیم بپذیریم این استحلال نمیشه استحلال باشه مشروع هم حلاله چون این چهار تا با هم حرام نیستن و معازف خوصای حرام نیست یک اگر استثناء شد پس بقیه هم استحلال نمیشه و بقیه هم مباه میشه برای, برای بقیه دلیل دارید خب برای بقیه دلیل داریم دلیل, دلیل. دلیل ما چند دلیل داریم دلیل. دلیل منطق داریم و دلیل مفهوم داریم اگر بحث دلیل فقط منطقه که بله ما داریم که منطق نداریم ولی که مفهوم هست که دلیل باشه آلا غیر از این مفهوم فهم صحابه هم همینطور صحابه در محسوس تفسیر آیات ابن مسعود و دیگرانی که در تفسیر آیات سوری سوری لقمان ذکر میکنن در بحث ب که لغو عداون مبین که که میان این این لهو لهو الحديد همون, همون موسیقی و این مسائل هست بحث فهم صحابه است بحث فهم صحابه میاد من مفهوم میاد دلیل زیاده الان بحث بحث قرانیش و اگر به ما این دلالت‌ها را بگیریم حالا خصوصا اینکه حالا یک مسئله لغوی هست قبلا قبلن بحث شده خصوصا اینکه اینها رسول صلی الله علیه و سلام بر اساس این 4 تا جنایت عذاب برش نادید کرد. داره جنایاتو ذکر می‌کنه. اگر مباح انجام میداد می‌دادن. یعنی اینها لباس نمی پوشیدن، آب نمی خوردن. خیلی کارهای خوب داشتن میکردن درسته؟ شاد که روی لباس پوشیده بودن عورتشون پوشیدهن، فلان پوشیدن، دیگه لباس پوشیدن دیگه. رسول خدا نمی روی انگش روی چیزهای خوب بذاره. داره حدیث در باب زنم ذکر می‌کنه. اینها عذاب بر نازل می شود و چرین می شوند اگر چرین کارهایی بکنند و کردند چین کارها فقط مذمته پس اهم چیز خوبی نیست مذمومه که عذاب بر ایشون نازل میشه درسته اهم چیز خوبی نیست چیزی مذمومی هست که نازل میشه اگر خوب بود راست اصلا در سیاق ذم ذکرش رو نمی کرد که خیلی خوبی ها را راحت کرده کدوم یکی خوبی, خوبی هست که اگر خوب بود که رسوات رسول الله فلان و فلانا, فلانا با بحثش رو جایی باز کردن اینکه فقط باز باب تبدین مقام کردیم حالا هرچی بحث است بگید که بحث تا جاریه شوطاش که در نظر عایشه نشستی بودن که ما بحثشون در بحث تراول و حدیث باشه دو تا جاریه نشسته بودند در نظر عایشه دو میزنن و اول بحث وارد میشه ما بحث کوفص در حاشیه نماز سنت رو کردیم لیکن اینجا هم میگم خلاصه و اون یک بحث ما در بحث سنت انواع سنت ما سنت قول داریم قول فعل و تعید و تقلید و بحث اینجا وقتی که ابوبکر صدیق وارد میشه به خودش اجازه میده که رسول الله صلی الله علیه خوابیده روز صورتش پوشیده بیاد به خودش اجازه میده میاد وارد میشه میگه از و شیطان در بیت رسول الله مزمار شیطان در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله میاد صراحتن انکار میکنه ابوزعمری و شیطان و شیطان را در... الا حرف اوله انتقادش و بلقره نقدش در این آلتی که دارن میذاره این آلت صدای است. آلا اگر این حرف او بک اشتباه هست نباید رسول الله اصلاحش بکنه حرفت اشتباه غلطه صدای شیطان نیست باید تحسیلش بکنه ولی نباید رسول الله چه عداتی به کار برد عدات استثناء عدات استثناء که دلالت بر رخصت داره که این بحث قواعد فقهی و حوزیل فقه غلاب ای کاش از علم اصول میدونستن یعنی که با بحث اصولی باشون بکنیم گفت که انها به اول شو گفت که دعون نه بلشون بکن ابو بکر راهاشون بکن که انها یوم عید امروز روز عیده امروز یک رخصتی هست برای شو امروز روز عیده یعنی بذار امروز شاد باشن نمطلقا امروز پس استسنا شده روز عید و اونم دخترا و آن یک عداد تعیید روی دفل شما چه دلیل دارید با از دیگر موسیقی ها عرب و گیتار و نمیدونم عود و دیگر آلت ها چه دلیلی هست سنت این رو فقط قبول کرد چه دلیلی دارید با از دیگر دیگر, دیگر, دیگر چیزها غیر از این تیالا خود اصحابه هم همینطور فهمیدن پهمیدن روزی ابن مسعود و ست اصحابه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نشسته بودن ستا از صحابه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نشستی بودن همونطور که در تبرانی اومده که نشستی بودن سر یک نبشی نشستی بودن به قول خودمون نشستی بودن یکی از سابعی میاد میگوید که شما از حب رسول الله نشستی اینجا و اونجا دارن ده میدنن گفتن که ستا از صحابه رسول صلی اللہ علیہ وسلم یادشون یکی شروع فکر نبیل مسعود بوده و او بی بیبینو کرد و دیگری کردن. گفت که بابا این رخصتی هست این رخصت هست یعنی در روز عید شادی رخصت هست هم اونها بزنن و هم این که مایی ای که الان هستیم در اینجا جامون عوض نکنیم کونه مونه اگه اینجا بریم کون کجا بریم یعنی سبحان الله اگر رخصت نبود اگر رسالت اونجا نمیخوابید من خودم اتخانش کردم من کونه خودم مثلا داخت همه یک ماه پیش یک ماهانی پیش همسایاون ماشاال الله یه خونه داشت میرفتی با اون دفشون. اگر این قول از رسله نداشتن که این رخصت و اجازه هست ال در نشختنش یه چیزی که مکره هست. انسان با چ میگن چهکاری می که خصن در این دوران فتن بازار نممااد میرفت سوار تاکسی نوارد می شد مشت می, شود. می شود بر،, بر،, بر ما. لیکه صلات الله عليه مثلا برای اینکه به اومد طیزیر رو یاد بردن که بر خودشان مشقت ایجاب نکنن تخت نگیرند بشون این چیزی رو یاد میدن که که لازم نیست که در شین این کسانی که ادعای شده میکنن انسان فرار بگیره از دستش شه. حالا بحث خیلی مفصله. یکی همچین چیزی که هست در علم حدیثی تأیید سکوت رسول بر حرف ابو بکر. سکوت رسول بر حرف ابو بکر دلیلی هست بر تعیید حرف ابو بکر. حالا بحثش خیلی مفصله. خودم گفتم 6 7 وجه در کتاب نماز و سنت ذکر در این مبحث. در همین بحث حدیث حدیث عائشه رضی اللہ عنہ در صحیح بقاری بحث رخصت هست و اجازه دادن و رخصت زنها با اظهار شادیشون و دفت دادن دیگه شبهه چیزی دیگه به زنیتون میرسید وقتشو کنید و بحثت چیزی رس را حال اگر بحث حال بحث مردهاست آیا مردم ها امجاازه دارمم که دست بزنن و نمیدونم بازی و برقصند و دست بزنن؟ سوال این یاد اگر اگر بود آیا ابو بک وات میشد این کار بکنه؟ مردم نداشتن. مردم نداشتن نداشته. مردمی چینیکنه بخاطر همین آب بعد این کار کرد. صحابه همه رسول الله اصاس من نشستن خودشون گی کار آده میکردن تا ببینیر رو صحاب این کار میکنه. چرا چی کار مردم نیست؟ کار مردان نیست و دو با من این که در صلی اللہ علیہ وسلم دعا هنه گفت خطاب زناست، دختراست، این ها شاید باشند، نه ما ها مطلق نگفت، عام نگفت، عدا تخصیصه، خاصه، خاصه اونهاست خیلی بله، نی بود و فلان بود و خیلی چیسا بود و خیلی از آلات تار داشتیم، تار داریم، ما در حدیث نفس طریق داریم ке таро نمیدونم دوфу نمیدونم نیو ҳаминро ҳама мо насл аз ابن Аббос солим аз худи расалат сана дорем ҳама ин ҳодиса ин бале ҳама инҳо меда дар насри вада саҳиҳа меда ва аз инҳо шоҳид буин ҳарии масъалаи зиёд ахтло яъни ки зикр حдис در مصعب احمد داری با دا سند صحیح ان الله حرم علیکم الثمره والمیسر والكوبا والكوبا که بعض عمیکا از alat های تمون تبلیغت که در حدیث ها میذارن این وساله که بحث زیاداله عزله و نمیدونم ثبوت اون عزله ولی فقط صحیح ترین قضیه تندیل همین دلیل که لفظ شمول و این حدیثا در تعارض با حدیث عایشه نداره چون برای اظهار شادیم اش خاص Субханака Аллахумма ва биҳамдика субханака ва биҳамдика ва саллаллаҳу аля муҳаммадин ва